بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و السلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم رب شرح لسدری و یسر لیامری و حلو لقوت من لسانی یفقه و قولی برادره محترم در ساکه در طول یک سال دو سال دهی مسجد مبارک با امکاری مولای سید محترم عبدالسلام عبد و دگاه سالای محترم صورت میگیره بر توی اگه احساس را پیدا کرده که اکثریت جوانای محترمی که در اینجا اشتراک میکنند اشتراک میکنند حتی نوجوانایی که سنشان پایین هستند اکثریت از اینا الحمدلله در جمله کسانی داخل شدند که اینا خودشان آ فعلا میتررن که و میخواهند که وظیفه دعوت به اسلام و پیش شروع به این خاطر ما در سامروزی خود خدمت شما درباره رهنمایی او جوانایی که اقند دعوت به اسلام هستند و دعوت میکنن ولی بعضی از شرایط دعوت نمیخواند، ما خواستم که این موضوعات امروز بعض نکات که از خدمتان به عرض برسانم تا اینکه که اگر شما در طول وقتی که در درسای اشتراک میکنین طبعاً بر شما ای فکر پیدا شده که اسلام اساسش برای خواهی نه بلکه بر خیرخواهی گذاشته شد یعنی اگر یک مسلمان خودش اعمال نیک میکنه این مسلمان تا وقت اعمال ازی قابل قبول نیست بهش خداوند مطال تا که علاقه من این که اینمی کارهای خوبی را که من میکنم دیگرها هم باید این کار بکنن و حتی از مکد خوبتر و حتی از مکد پیشتر اینا به جرنت برن یک نفر آمد و اگه دعوتگر مسلمان گفت که استالین مردار شد این گفت استالین مردار شد او برش گفت که اعوذ بالله من شیطان رو جیم ای انسان ظالم تو خدا شیطان ساختی گفت چرا خدا شیطان ساختم و خاطر ازی خدا شیطان ساختی که ده مردن یک نفر انسان در حالت کفر شیطان خوشحال میشه شیطان خوشحال میشه که یک انسان کافر بمیره ولی یک انسان مسلمان هیچ وقت خوشحال نمیشه که یک انسان کافر بمره تا که وستش میرسه تا که امکانات داره تا که علم داره تا که دانش داره کل لذیره موتر خوده به خدمت دعوت میگذاره فیسه خود در خدمت دعوت میگذاره انرژی خود در خدمت دعوت میگذاره تمام امکانات وقت خود را برای دعوت سرک میکنه تا اینکه یک انسان گمرار را در راه حق دعوت بکنه. خب اینال وقتی که دین مقدس اسلام اساسش خیرخواهی است، خیرخواهی یعنی چی؟ یعنی ای که من حتی وقتی که دعا میکرم نمیم که ربعفرلی خدا تو بر ما یاد نداده خداوند بر ما مهید که بگوید که ربعفرلنا بگویم که من خطناستم میگه وقتی که به برماندگی از کل مسلمان ها بگویم که خدای کل ما را ببخش نگو که خدای ما را ببخشی بگویم خدای کل ما را ببخش و وقتی که عبادت میکنی نگو که ایا خدای ما تو را عبادت میکنم به نمایدگی کل مسلمان ما بگو که ایا که نعبودو و ایا که نستاین خدایا ما کل ما تنها را عبادت میکنیم و تنها خاص از تو کومت میکنیم چرا؟ بخاطر از این که در دعایت و در عبادتت دگرها را هم شامل بسازی تا که تو خیرخواه امت و برای بشریت باشی ما مسلمانات اگر قدرت پیدا کنیم دیگارا که قدرت پیدا کنن ما شما را بم میسازن که بکوشیم ما را شاید کسایی باشه که امیال پلان داشته باشه که را بکشه شاید کسایی باشه که اهل پلان داشته باشه که وطن ما را خراب کنن شاید عملی کسایی باشه که سر ما بکنه ولی ما و تو مسلمان اگر وقت داشته باشیم چی میکنیم اگر قدرت پیدا کنیم چی میکنیم اگر پاتچای کل دنیا از ما شوه چی میکنیم یک کار اساسی را میکنیم و که جانب مقابله دعوت میکنیم که بیا برادر ما شو بیا که ما ما نان خدا که تو نصف میکنیم بیا مثل انسان زندگی بکنیم بیا مثل دو برادر و کون و عباد الله اخوان و پیغمبست سلامه که را باشین و خود کل تان خود کلمه توحید بر چی آمده کلمه توحید بر آمده که تا صفه تمام مردم؟ یک سب بسازه کلمه توحید برای توحید کلمه آمده تا کلگی یک قسم انسانی زندگی بکنه خب اولی که ما میخواییم که دعوت بکنیم برای دعوتگر چی چیزها ضرورت است اول شرط اساسی دعوت برادرای محترمی است که اگر ما دعوت میکنیم دعوت از عمل خود شروع کنیم دعوت از خود شروع کنیم اول خود دعوت بکنیم اول غلطی های خود بگیریم برخود یک کتابچه شفت بردیم بگیم که من در پنج وقت نماز چند وقتش در نماز جماعت هستم در قواریم چند فیصد قواریم مشابهت داره با چیری پیغمبر خدا صلی اللہ علیه وسلم و صحابه اکرام او که میخورم چه قدر یک مسلمان اگر اصاب بگیریم مثلا یک موضوع کار میکنیم که انسان میتونه از وقت بیدار شدن وقتی که آدم از صبح بیدار میشه از خواب تا وقتی که دوباره در بستر خواب میره روزانه موتو میتونیم که هزار سنت پیغمبر انجام بدیم یک روز رو که خود معاصبه بکنیم که من امروز آیا 500 سنت پیغمبر عمل کردیم اگر معذور سنت عمل کردم باز وقت من دعوتگر خوب استم. اگر ادعاقل اشت ست اما یکی که من خودم بسیاری سنت پیغمبر از پیش من ترک میشن و با باز وقت با از اما میگم دعوتگر هستم میگه نه، این درست نیست وقتی که اصحاب کرام در یک جبهه می جنگیدن و می دیدن که ما پیروز نمیشیم میگو فو اصحاب کرام ببالی که دفعی نمو شما کدام سنت فراموش شدن یک سنت فراموش کنی در صف مسلمان ها شکست می ببینین در جایی که پیغمبر بود اصحاب کرام بودن کبار صحابه بودن ولی پینجا نفر چله هشت نفر در جنگ احد در غضه احد یک گپ پیغمبرش رو یا یک گپ پیغمبرش بر کستان که برشان گفته بود که دون سر رو که باشین چور نخورین پایان نشین در حالی که اونا اجتحاد کردن گفتن نیخو پیغمبر گفته بود که ما خالق آلخو شدن گپ خلاص است خالق جدیان اونا وقتی که خ گپ پیغمبره از پیش شان لغزش طورت گره مسلمان ها کلشان شکست خوردن چرا شکست خوردن؟ به خاطر ازی که درس باشه. اگر پیروز میشدن باز ماوتو ما میگفتیم که او نه. فراموش کردن، لکن پیروز شدند. میگه نه. شکست نصیبشان شد. اصحاب به شهادت رسیدند تا اینکه ماوتو از او درس بگیریم و بگوییم که عمل کرده از اینها سبب شکست از اینها شد. پس انال ماوتو که تو ادعا میکنیم که باعث درس در صف ما بسیاری کسا همه که آلد در جنگ افغانستان در جنگ ایراق چرا ملایکه هاو نازل نمیشن چرا کمک نمه کمک نه چه وقت کمک مه که تو خودم مثل اصحاب پیغمبری بسازی که در جنگ بدر وقتی که دست خدا به با خداوند بالا کردن خداوند برشان لشکر از ملایکه ها را فرستاد کدام عمل کردی تو میتانا که ملایکه ها را از آسمان پایان کنه عمل کرده تو اگر کار کاری بکنیم که ملاکی رحمت در بسیاری از خانه های داخل نمیشه پرسان که از مولیسه بگو چه وقت ملاکی رحمت در خانه ما داخل نمیشه برو در خانه سایی که ملاکی رحمت چرا داخل نمیشه در دا خانه که اون دو داخل شد در دا خانه که اون ها ورش وقت داده شد در خانه ای که اولادهای با عادت رو از اون دوها گرفت، در خانه که اولادها ایواز دوهای ای قسمی نمسته بگن مثل اون دوها بکنند در خانه از این رحمت داخل میشه. در این خانه خو ما تو شیطان داخل کردید آیا دا جایی که شیطان باشه، اونجا ملاکی رحمت داخل میشه. آیا دیالکتی که در افغانستان و در عراق از اینجا رحمت خداوند سرمان نازل میشه. ما مسلمانی که مسلمان میخواد سر قرآن انتقاد میکنه، مسلمان میخواد سر آحادیس پیغمبر انتقاد میکنه، مسلمان از پوشیدن لونگی خجالت میکشه، مسلمان از پوشیدن کلاه سفید خجالت میکشه، مسلمان از ریشمندن خجالت میکشه. این مسلمان وقتی که برش گفته رو به ایک شکل از اشکال که ده برادر چری خدا اخلاق خدا لباس خدا نشاست خدا نام خدا نام اسلامی بانیم این سرش خوب نمیخورد در اینجا رحمت خدا نازل میشه بازه اینجا ملائکه ها نازل شده و بر مدد ما نه ملائکه در جای نازل میشه که اونجا ما خودم مثل ملائکه بسازیم خب عزیزت حسن بسید دارد ما شما گفت ماست بود که اگر دعوت میکنیم اول از خود شروع کنیم اول امتقادات متوجه خود بسازیم باور بکنیم که بسیاری نمازخانای هستن که دست صفحه اول نماز نماز میخانن ولی از بد اخلاقی از اینا دیگه کسایی که نه علاقمند من دی نماز نمازخانان رو ترک میکنن در مسجد در صف اول میشینن غیبت میکنن خانی یکی از خشانداریم رفتیم گفتم تو چ خوب آدم هستی نماز شبمون با جماعت نرفتی خوبتر هم نرفتی گفت والله من یک ما پیش میرفتم ولی من رفتم که من چه ریش ها غیبت میکردن غیبت میکردن غیبت میکردن من فکر کردم که از ثواب جماعتم کدر گناه غیبت زیاد شد آقا گفتم باز دیگه در نمیرم دیگر چن تا ریش سفید در دا داخل صف مسجد چنگال شدن جنگ کردن، غالمغال کردن، پیش سفید ایوازی دی که مثلا مثلا نماز خواند برام دوستانه، صمیمانه، با محبت مرا تشویق کنه، خیرس نماز بخوان، بازی که من نماز خوب درست شدم، باز بادی با مربیه با که کلامو پوش، در روز اول مرا گفت که الا تو پاپلون پوشیدی تو کافر شدی، تو کلاه نپوشیدی کافر شدی، تو خارقاق پوشیدی تو کافر شدی، تو, تو, تو ریش تکل کردی تو کافر شدی، دو من افتو خب وقت که من ریشم کلک دهی کافر شدم، دهو کافر شدن، دهو کافر شدن میگم آدم از چی میگم که به اخلاق بدی دوتگر مانی عزیزی شد که نه نماز بخانم نه یک کس دیگه باریم چی میگه یک گفت گو لفشوار اما بسیار خدا متدین میگیرم بسیار میگه من دیندارستم یک ذره اخلاق نداره در داخل میشه سلام نمیتن در این خقلتیم فوران من را در این خگف عادی بیابی می کنن به اگر ایشوهر ما دعوتگر است و مسلمان است مرا تیره دی مسلمان دعوتگر ای باز باید که دعوت بکنن سبب گمراهی شدن پس دعوتگر اول باید سر اخلاق خود فکر کنه. بسیاری دعوتگر ها عادت برن که میگه که مولا رسیدم ما کامل شدم ما مکمل هستم مولا بیخی شاهدنامه گرفتم از جنت چی شاهدنامه گرفتم چی خبر تو اول در جنت میریم ما در جنت میریم چی خبر که اینوی انسان ضعیف غریب بیچاره که دو کلمه یاد نداره در روز قیامت اول در جنت میره و ما تو که خوب در ساره خاندیم خوب عالم هستیم پنست سال مورد محاسبه خداوند قرار خواهد گرفتیم پس ما خباید گیره نظر خود داشته باشیم عزت حسن بسیر پیشش یک چند نفر غلامه آمدن گفتن چی مشکل است؟ گفتن امی بادارای ما سرما بسیار ظلم میکنند میرو روز جمعه تو بخیست برازی ها در باره بالای زیر صحبت بکن که نه دکه سرما ظلم نکنند حسن بسیر گفت خب بچه شم جمعه اول مردم آمدن کلای گوش بدن کال گفت میزنند اید جمعه دوم باز گفت نزد جمعه سوم باز گفت نزد جمعه چهارم باز گفت نزد جمعه پنجم که یک ماه تیر گپ گفت وقتی که گفتاش خلاص شد تمام امی کسانی که غلام داشتن خیستن بعد از نماز صدا کردن گفت ما کل ما غلامه های خدا بنامه خدا آزاد کردیم غلامه آمدن پیش حضرت حسن گفت گفتن ما به خاطر از این آمدیم که از شما تشکری بکنیم ما بودیم به خاضر عزیزی که تو را بکنیم که تو چرا همی گپایی تا چار پیش نگفتی یک ما تال دادیم ما دا یک ما مشکل بودیم آل آمدی بر ما این از سیطا وی گپا را میگیم. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه برشان گفت که برادر عزیز گپ که عالمه که دعوتگره که خودش عمل نکنه گپ از اون از این گوش انسان داخ من غلام نداشتم پیسام نداشتم امکاناتم نداشتم دقیه یک ما رفتم کار کردم پیسه پیدا کردم بازه زو پیسه غلام خریدم بازه غلام هکتش معامله نکردم باز رو به نام خدا آزاد کردم باز بازه زو آمدم گف دودم تا که گفه من تاثیر پیدا بکنم تا که گفه من تاثیر پیدا بکنم او تاثیر پیدا کرد شما را آزاد کرد از این خاطر دعوتگره که خودش دعوتگر است متوجه گرزنن خود نیست متوجه نشست خود نیست متوجه برخواست خود نیست مردم کلش یک که حساب میکنن به چه تو بسیاری گپا بسیار ساده به نظر میرسه یا نفر میاد از پیش سوال میکنن سرش پشوی تو ترش میکنی اون نفر دیگه میگه, میگه. مراتی رزیدین داری سکو بر اخلاقی خود از اونه یعنی فرکت دو, دو دست دست تو بر دست شلوکه دست دست میتی خوب استی باز که مردم مزنفر میشه از تو دعوت کرد عزیز خاطر برادر عزیز مفترم وقتی که تو دعوت میکنی اول خود دعوت کن اول خود اصلاح کن. اول اشتباهات خود تبی که چه چقدر اشتباه داری اول خود وزن کو که چند کیلو وزن داری اول ایمان خود اعمال خود در طرازو پردو و عزت امر رضی اللہ تعالی عنہ امیشه بر دوستای خود میگفت بیشی برادر عزیز رحم اللهم رعن دلنی علی خطایی میگف خداوند سرزور مد رحم بکنه که اشتباهات مرن برن بفا من ما بسیاری وقتا اشتباهات دیگران را در نظر میگیریم فلانی قسم اشتباه اجبداره توی قسم اجبداري توی قسم اجبداري خودم حتیادم مجلسی که میشینم کات صفیم کات کسی کاتم از دوکان کار میکنه کات کسی که امرای ما مصلحت اخلاقم اخلاق است اگر بری از اون نفر پرسان کنی بری از از از اون نفر پرسان کنی بگی درباره اخلاق فلانی دعوتگر چی می، چند چن میتیشن ده منفی صفر از صفرم دانمره پایان میتمیشه به خاطر چی به خاطر ازی که از خود بسیار راضی است من خود دعوتگر هستم من تفسیرخونم من خود حدیث خواندم من خود بخاری شریف خواندم من خود در سای اشراق می کنم بنا ان محصن از این خاطر میوه از داخل گنده شد سیب بسیار وقتی میخری زایش بسیار خوب سیب از خوشت نه داخل وقتی میری که درست پیش میگیری که کله گنده است مسلمانی که از داخل خدا گفت که من بسیار خوب است و مجد طور است سیب خوبش است از داخل چی شده؟ شیطان وقت کرمزدهش گندش کرده باید آدم از اخلاق خوب از دیگرها پرسان بکنه که چند فیصد از اخلاق ما راضی هستین؟ چند فیصد از برخورد خوش و راضی هستین؟ تو که کتمت یک جای کار میکنی چند فیصد مرا را نمره میتی خیر است؟ صادقانه بگم خیرس کسایی که شاگردای برای شاگردای دستر بگو که یک یک سوال نشته کنیم بگو که من چند عیب دارم. بعضی شاگردات وقتی که نشکلن که تو یی بداری، یی بداری، یی بداری، بعضی میتونی که بگوی من ذحवत کرده درست هستم. خیرس انسان عیب میداشته باشن به عیب ذات خداوند متعال جل جلاله، اما دوام دادن عیب و راضی بودن از خود اینی عیب بسیاری از ذحवतگرا هستن که متوجه عیب های خود نیستن. دیگه محترم مطالعهش خب دعوت باید از فرد شروع کنیم. بسیاری خصاس میگه من می دعوتگر شوم چه خصو میخواد دعوت کنیم مگه می حالا من میخوام که ع نمیجا استاد برای مرگ دی دخه وقت به که ما نمیشه دعوت بکنم. و وقتی که بر وقت داده شود چوب میمونه ماه گرد دا نه می خشک میشه، میل هر اوگوداد گل تو دعوت هم شروع کن. از رفیقای چی رو از اونا رو بشنو ببینی که یک دا بیس نفره بر تنهایی یک یک نفر دعوت کو برادرتا، مادرتا، پدرته بر از اونا احکام دینه بگو بر رفیقت، بر دوستت اگر سرزده رو تاثیر کرد یک ده نفر به نمازه به دعوت فردی نماز خان ساختی باز برو که نال من میخصم دبین نفر گپ میدنم اما که ما مستقیمن باید دعوت از شروع کنیم با وقتی که یک نفر یک سوال کرد با جواب گفتن هتا نیمه دعو بزنیم و غال کنیم و قار شدیم بازگرد بگه من را تیرده دعوت ایش دعوت دیگر نمی کنم. دیگر وقتی که انسان دعوت میکنه باید شخصیت نقطه سوم که شخصیت کسی را که دعوتش میکنی تو باید بره در نظر داشته باشیم همین نفری که ما دعوت میکنیم برای اسلام بسیاری کسا هستن یک نفری که لسانس است کت از گپ میزنه مثل که برای یک اشتوککستون فدو گپ میزنی اتو تو جملات را استعمال میکنه که برای یک اشتوکک خرد گپ میزنه برای یک دکتر دعوت میکنه تو گپ های میزنه که دکتر هیچ گپای در نامی پذیرد پس دعوتگر کسی است که با اخلاص جانب مقابل خدا بشناسند هیچ سفیناست تو یک ریشتفیت بر اسلام دعوت میکنی صد فیصد صد باید بر ریشتفیت احترام بکنی چرا که از دیدگاه اسلام کسی که بر یک ریشتفیت احترام میکنه مثل که به خدای عزوجل احترام بکنه چون خدا برش گفته برای احترام بکن باید برازی تو الفاظ رو استعمال نکنی که سر او رو پیش خود مثل اشتوک اکوار قرار بتی وقتی که فاهمی که این نفر خودش نمیفهمه یا جنبه مقابل انسان یک موضوع را نمی‌فهمه وقتی که نمی‌فهمه غافل است از مثال‌های بسیار خرد خرد ریزان این که او را از غفلت بیدار بکنی از غفلت او را بیدار بکنی تا که آب و خدا ما غافل هستیم یک کسی یک روز میگه جنات کجاست؟ کی از جنات آمده دوزخ کجاست؟ کی از دوزخ آمده چی آمده؟ هیچ کس نامده؟ گلام کسی آمده که شما برای ما میگین؟ مرحبتون یک قصه حقک برد میکنم گفتون که جنت دوزده کس نامده لکن با یک قصه دیگر برد چی یک رو برد بکنم قصه چیست؟ قصه یک ماهی را برد بکنم یک چند تا ماهی در باین بحر زندگی میکردن یک ماهی بود خوب آمون تو چاق اندامشان خوبش رامبو باره این ماهی دیگه برش گفتن که او مایجان، جان او رامبو جان اتیاد کن گفت چی اتیاد کنم اونجا دیدم که اکتار کشال شد در بین اتار خوب یک تو تا گشت سرخی نازنی این کشال است. این ماهی رامبو می و که برای دبو خورم دیگه گفت نخو، خوب گفت چرا نخورم؟ خورم گفت در بین از او گشت چنگک است. گفت چنگک چی میکنه گفت چنگک تا میکنه بالا. در گلونت بند میشه تا کش میکنه طرف بالا در شکل خیلی بالا که کش کرد گفت چی میکنم بالا که کشت کرد اونجای قسمی بحر واره نیست عوو واره نیست که خسم عوو باشه و چی باشه گفت چی از اونجا؟ گفت اونجا رگزار است، ات رگستان است که یک تکمی افتا بیرزه نمت سرخ کشت کمی پردید تمام اعضای بدرت بر میگیره کی گفت از اونجا از اون منطقه آمدن؟ کی آمدن؟ گفت خب دیگه بگوین دیگه چیست؟ گفت دیگه سعبونه اونجا یک بروتی همونتا خوب چه آخششتا بروتهای خدا میشنگ کرده چه همونتا یک داره کارده است؟ ازرایل مایا گفت خب؟ بگوین بگوین دیگه دیگه چی؟ گفت دیگه سعبونه اونجا یک داره کراییس از روغن همونتا پر است گو باست چی میشه میچه؟ گواصا ام تشکام تا پهرا میکنن. جگر رو روی تپوس میپردن، باستر رو در بدن می‌فردن، جق بغ. لحظه که تو میسوزی، وارد میگن که مص کجاست؟ نمک کجاست؟ مرچ کجاست؟ دیدینا کجاست؟ मसाला کجاست؟ گفتم شما عجب مردم هست است، از خیال گپ میدن است، چی گپ میزنین؟ کی اومده از اونجا؟ من خوروس 200 کیلومتر اون طرف بحر رفتم، 200 کیلومتر اون طرف, او طرف رفتم. کل دنیا اواس کنه دنیا اوست اوان بیسه عرب نازیانین یکه آن دفعه که سرم بالا کردم در بالا بغیر از آسمان آبی دیگه هیچ چیز نیست نه ما ریگه دیدیم نه ما بروتی رو دیدیم نه ما روغه ندیدیم شما با تمام با گفتن او ما بایی جان رامبو ما ای ریچ خدا دیگه دریا ما نکردیم <تصفيق> چندین تا مثل نفرای نفرهای رفته کرد سر پس اسکلیتش آمده. ای گبر برو برو بر شما بسیار گاف از یاد یاد دارین و از بخود از زندگیم ندیدیم تمام جایی که ما رفته ماو است مایو است مثل ما برو طرف مایای صور خاص طرف مایای زرد است اون طرف مایای رنگارنگ است زیبا است و فلانی است و فلانی است تو اومدی که برادر گلیچه باجیر هست یه قسمی ژاپنی است یک آدم یک قسم مخلوق است بود دونه پای داره چاق از دستای کتا کتا داره میتونه سوتول زاغ تا کرایی در گپوار قبول نمیکنیم برین گفتن خب این ماهی دیگه گفتن که چطور کنیم؟ یک ماهی اوشار بود گفت سدها چه راق دارد و بیرا همه روید بگذار تا که افتد و بیند سزای باش. بانش این ماهی رفت دفت که ما چطور میخورم باز بینیم بیبینیم که ما رکش کی،, کی کشم میکنم و کی باز میبره؟ این سعی که میبرشن ده ده, ده, ده. کمی گل هم کنمه که در گروه چنگک از کاشش میگن. کاشش میکنن که بالا میش همه که میشه و گل ها همین فرعون که اضضای داستان دست خود گرفته آ دی مایان بگه فراون داره فراونناگر که آمن تو صداکنی وقی ایمان اووردیم فر آان دیگه این مایان دگه ای... که سلب میکنن حال که دیدی که باواده جان کنددرش هست می بینن که بیررو س میگ راستی س رگزار است. سلب میکنه که بروتسل گگرغن است از این خاطر اولامای اسلام میگه که از باصرات تان هست تان کار نگیرین از باسیرت تان که حس عقلتان تان است، از عقلتان تان کار میکردن. سعی کن کل دژر میبینه. وقتی که در اگزار ضربه آخ بغل موخ کمر موخ گردی موخ فلان یاد خیزدک میذنگ فاسک دباد فاسه، بروی تو سر میگیرش میکنه کجا میری تو بیا ولی سعی میکنم میگه دنبال سرچید خود، امروز شکمش از چشمایش میبینه گذاشت اونسو میکنه چشمایش میبینه باز خودش میگه سطحا چراغ داشتم و بیراه همه رفتم بگذار تا به سوزم و بینم جزای خیش باز با داده ساید با این با این که میپردنش که میبینه که برای سی واسدا میکنه که آه, آه بسیاری بسری کسا هستن که اونجا برای عزت ازرایل علیه السلام و خط رسیده که فلانی امروز ساعت چار بجه میموره اسد رئیل الله عزیز سلام دکه آماده گیم بگیرن؟ نه که می‌ریم دکه کند می‌کنیم. ادیگارو ای تا ایمپو روز ای دیگارو چپاتاروش می‌کنیم. دیگر خاندان من دیگر گوشکی آدای گوشش است. خبر نیست که ازداسد رئیل الله عزیز سلام که تلاش کرده خود آماده هندیه. ازیکاتر این انسان غافل میگه. این هال وقتی که انسان غافل است باید موت دعوت کرد بر غافل بفهمانیم که تو غافل استی. بر غافل بفهمانیم که تو غافل استی تا کو از خواب غفلت پیدا شود. از خواب غفلت بیدار شونن اما ای که مثلا بسیاری است جانب مقابل نمیفهمن این خودش وقتی که دلایلش مثال‌هاش گپاش ضعیف است ما وقتی که در که دعوت بود درس می‌خوندیم بر ما میگفت ته به مطالعه کنین اینجینیری رو بخوانین، کامپیوتر رو دعوتگر اول باید یاد داشته باشن اینترنت دعوتگر اول باید یاد داشته باشه چرا چرا که تو باید معلوماتی داشته باشی که به همراهی هر کس به زبان خودت گپ بزنی در از الازهر وقتی که کس داخل میشه باید یا زبان انگلیسی را یاد داشته باشه یا روسی را رو یاد داشته باشه یا فرانسوی را یاد داشته باشه تا دا بتونن کسی جانم مقابله که دعوت میکنه با زبان خودش او رو دعوت بکنه او کسی که مثلا زبان انگلیسی را خوب یاد داره او میتونه که یک انگلیسی یا آمریکایی به طرف اسلام خوب دعوت بکنه ولی ما متأسفانه در افغانستان امروز مشکل عزیزی داریم که تو چرا انگلیسی میخونی؟ خاله انگلیسی حلاله یا حرام؟ در واقع پیغمبر صلی الله که زبان مردم یاد بگیرین تا که از شر از اون مردم نجات پیدا کنیم زبانشان رو باید یاد بگیریم. اینالو ما باید جانم مقابل ببینیم که در مقابل من مکیر دعوت میکنم. اگر سنش خردوس، باید به لطف شفقت بگویید. اگر سنج بزرگ است، باید به رز احترام بگیرید. بسیاری که اساس پادر خود به نماز دعوت میکنه میگه پادر جان تو را نمیفهمی تو جاهل هستی تو مرد 50 سال پیش هستی تو از این زمانه خبر نداری دل از دور از می حمل سیا میکنه باز بعد از وقتی که باش مثلا میگه میگه خوبه چه من مخ... که جاهل هستم من که ادم پیجا سال پیش هستم من که چیز را نمیفهمم اما تو که میفهمی از فهمیدگی تو مراتبه از این خاطر آدم وقتی که دعوت میکنه باید به مقابل کنه خوب درک بکنه که انی جانم مقابل من استیدادش چه قدر است یک نفر می بر برای یک کس کمونیسم با بسیار فصاحت و بلاغت و با بسیار مثال و با بسیار دلیل بر درس می تن. یک نفر می بر ازو سکولاریسم با بسیار از خوبش برای تشریح میکنن، توضیح میکنن. دیگه میای صاحب، از طریق فلسف، از طریق برای اینه دعوت میکنن. دیگهش میای صاحب برازی یک کفردگی با اصحاب... با مسیحیت از طریق فلم از طریق تئاتر، از طریق هنر برازی نشان میده. و موتو با بسیار ضعیفی. با بسیار ضعیفی. قرآن و اسلام را بر معرفی میکنم به نوان اوخ نمیپذیره یکی شما مسلمان ها بسیار ضعیف هستن. قوی استدلالتان بسیار ضعیف است و بسیار کالانکار هم هستین از این خاطر ما در داره گل شما بیبینین در دیفغانان در پیش سینما پامیر از اون یک تیر یک موتر کولی خراب به نهایت از سیتایشان پاره پاره صدا میکنن پانتون پانتون پانتون میبینی که کلگی محسلی در این بالا شده کلگی دی موتور بالا میشه اون طرف سعیل میکنی که یک موتر بسیار لکس الکندشن داره سیت های بسیار لکس داره پرده داره بسیار مقبول است سرعت خوب داره ولی کلینر نداره چرا کلی گیده او موتر کونه بالا شد و دیگه موتر نو بالا نشد چون موتر نو کلینر نداشت امروز مردم مسیحی میشه سکولار میشه کافر میشه اوندو میشه از اسلام دور میشه اسلام امروز به چیز رو داره به کلینر به یک کسی که مخلصانه با حکمت مردم به اسلام دعوت بکن محتر اسلام لکس دارای همه صفات خوب ولی مردم از این میگروزن چرا؟ چرا ما دعوتگری با حکمت نداریم دعوتگری که وقتی که در سر من بر با حکمت صحبت بکنن برادرای محترم دوستان عزیز جوانای گلم پدرای قندم ریش سفیدای محترم علماای عزیز دانشمندان محترم برش بگه سلام علیکم چهار کلمه بگویم یک افسره درباره گپای خود آمادگی بگیره یک افسره بیا بوت بیایید برای ذره گپ بذارن گپای خوبی که کل جذب استفاده کنه ما چی میکنیم روماردو آه اه جان اه بیدین اه بی نماس اه کافر اله اله اله محمد اله که لوگ رویه خد اپنیده مجده مجده چی کنه اینجا یا گروز مای کسی دیده مجده اه هماردوم بای موتوم مرگ وار باشیم با دیگاه گفتان در خدسای کلانگی که شدی مرگ مرگ است کلنگی همیشیدیم مرخ هستیم رو ساییم مارا کلو مارا مرخ شور کرد تشکر سبیند آمدیم به نماز خواندن آمدیم انسان فرز بر آمدیم مرخ این دوتگیر بچه شمی خود ما ایدیم یا جای دیگه است دوتگر شروع کرده از خر خر همش ناسین خره خره دیدین آخه دیدین خب بگو ده خوب خوبخر دارن با از برای خدا صفات پیغمبرها را بگو صفات صالحی نه بگو صفات دوستای خدا را بگو کل پس که بر آمدن یک و نیم ساعت کنون غیبت شروع کردن از و خدا مخورم هم شر غیبت هست و غیبت از غیبت هست از این خاطر آدم باید جانم مقابل خودم باید این رشیز کنم حفظ شخصیت کسی که تو او رو دعوت میگن حفظ شخصیت مدعوب بسیاری وقتا در دعوت قاون است یک نفر که نماز نمیخوانه تو بیخوی رو دعوت کنی که نماز بخوانه چشمای سر تا پایین بگی موقع برادر عزیز نماز گرفت زدن از با خدای عزباجه رو نماز رو آوردن از بطرف خدای عزّا جلال. نماز اثبات محبت خدای عزّا جلال است. نماز تشکریس از نیمانتایی که خداان برای ما داده. سرت پایین بگیم چرا؟ تا کوچولو مقابل که تو چی شده خجالت نکشه. خجالت نکشه. وقتی که دعوت میکنی. در این صورت در وقت دعوتت در مقابل اتو گپایی بزنی که وقتی که گپایی تو خلاص شد اگر او فکر میکرد که 90 تیزید شخصیت داره تو باید دوره 100 تیزید شخصیت بیتی یک ذره هم شخصیت از رو باید تو پامال نکنی از بین نبری که احساس نکنه که مرا رو به شخصیت سا این دعوت است که جهانم مقابل احساس کنه که دعوتگر دوست است و را شخصیت میده از این خاطر اگر کدام عیب شبرش بیان میکنی حق از او سر توز که تو باید سر تپایین دیگیدی تو باید خود بر از او او رو منتگذار خود قرار نجید که تو نت مرا باید باشه که گفای مرا گوش بیه باید از اونا تشکر کنی که خدا شما جوانارا خدا شما ریش سفید دارن شما خدا حافظای قران را. شما معلم سایبا را. شما استادای مکاتب را. شما محصلین محترم بوندون شما دکاندارای عزیز را. شما دریوارای محترمه خداوند شما را خیر بده که شما آمدین در می درس ما اشتراک کردین تا ما تا که مسئولیت خود در مقابل شما ادا کنیم که حق برتون بگوییم اگر شما نمیشیش چین ما گناگار میمونیم کی که خدا میگفتین پس باید دعوتگر از کسی که گپاش شنینده اور مننت گذاری بکنه بگه تو مننت سر من مننت سرمه گذار شدی خدا خانه تو رو آباد داشته باشه نه که بگه کوا که ما بودم که صاحب کفاره گفتم اگه من نیام نه منه خانه تو بود که من از مسئولیت خلاص شدم چون وظیفه من است که ما باید دعوت کنم اگر تو گوش نمی گرفتین در روز قیامت چه تو میگم الله شما شش شن گوش گرفتین بعد پیش خداوند سند پیدا کرد که خدایا من چند نفر مسلمانه چهار کلمه گف خوب گفتم این دعوت اسلامی از که رو که بخاطر خداوند میشه شخصیت جانمه مقابله باید در نظر بگی از این خاطر وقتی که میخواید شخصیت از بالا شد از اون خاطر یک کس آمد به شاهن راشید گفت ما میخوایم بسیار گفای تون دارد بگویم اما تو سخت سخت آرداشید بر از گفت که بیاد در جان خداوند کسی را که از تو کده بسیار خوب بود دو کسی رکه. از تو که اسوگاد روت بیش بسیار بلند بود پیش کسی روان کرد که از مکه ده بسیار خراب آدم بود لکن برش گفت و قول له قولا برش گفت که بر ازوی سخن‌های نر نن بگوین گپوتو نفره که بود دو پیغمبر بود که هارون موسی علیهم السلام بود گفت او نفر جانا مقابلشان کی بود؟ فرعون بود گفت نه تو از موسا وارون که ده بهتر تر و نه من از فرعون که ده بتر هستم. چرا برمکه فایزش داشت بگویی؟ خداوند برش گفت که قول لینه برشی بگوی، سخنهای نرم نرم بگوی، تا که دل ازو نرم شوه تو چه شو تو آمدی که مثلا میخوایم بر تو زاشت داشت بگوییم تو دوتگر نیستی برو برو بر رخصت است وازی خاطر شخصیت دعوتگر که اگر میخوای جان مقابل خدا احترام بگذاری با کلمات بسیار شیرین دعوت باید چی کنه دعوت مثل چاکلیتی مینو و رزوب سازه که تا او خوش شوه بگه بگو سر بگو سر سید بچش خدا خانه تاباست خیلی میبینی که مرو گفتی از این خاطر بسیاری از می که در جماعت تبلیغ هستن بازار که چی بکنن نبردنگ به که قند خوب است جان است. خوب یک تو تا کرو تامل کنه فهمی نیست خوب اگه پای دراز باشه پای تا مکداح فیلم میگن باز برتمک ما در هندستان دیدیم در افغانستان ندیدیم راست برسون کنین در افغانستان ندیدیم اما در هندستان دیدیم نماز از نکرد سلام علیکم کی صحوچی اچھا خوب خوبсыз جناب صار خدا چای برتمیرا شینی برتمیرا گلچې شېټ می منه اوی یخ برتمیرا می منه خوب که احترامت اګه یوازلار میگن امین نماز امین نمازه که خواندی امیر تو سه دفعه سبحان ربی العظیم گفتی این سه دفعه خوبه اندکش است پنج دفعه بگو هفت دفعه بگو امیر گفت صحیح سمی الله و من نگفتی گفتی این تو خدای نخواسته نماز خاندی خدا تو اجر میده سواب میده خیر امی امیر امی امی کوب صحیح استاد خدا بگی تا خداوند اجر تو کامل بده آ با خدا ما خود دو سال دعوت کردیم ما خودم نمازم به خدا خراب ما خودم صحیح سجده نمیکردم ولی میامد به بسیار شکل میگفت که به بسیار آجزی و بسیار خوبی خوشت میامد بگفتی بلو بلو دقام بلو <تصفيق> مدت دعوت بعض دعوتگرهای جوان ما هست دید که یک نفر نماز نمیخونه میخوای که در اینمی یک روز ها می خواهد که یک روز اونمو جانب نفر که هیچ نماز هم یاد نداره و وزور یاد نداره در یک روز او را پنج وقت در نماز جماعت آذر کنه نوی برادر عزیز دعوتگر باید فکر بکنه که من مثل کی بارستم مثل دیقان برای یک دیقان یک کس برای یک دیقان فکر کن تو دیقان هستی برای یک یک جریب زمین را میتنه که هیچ, هیچ زراعت نشده. تو چی میکنی؟ بر زمین می که نمید من بعد گندم می پردم اینه می روی تا دیگر به خیلی رو که باز ما دیگر می میره آسیا می برما آرد می او زمین میگه برو کاکا تو دیوان هستی ولو که دا برجی گندم هم اگر اگه دا, دا سال هم از پیش ما حاصل بگیری دا برجی هم پردی خیلی چی می میکنه کنه ای, دیقان. ای دیقان اول زمینه نر می سازه. ماشین داشت که ماشین نداشت که قلوه هر وسیله که بود میتواری وقت کرده دست خود زمین نرم میسازن تا که این زمین آماده چی شون آماده پذیرفتن دانش شون برای جانب مقابل که نماز نمیخوانن برای که نماز بخوان چرا نماز نمیخوانی برای زمین بگو را در گل دو تا چشم تو داری چکر؟ فکر که در یک عادثت دو چشمت از بین رفت خدای ناخواسته نگو که از تو بگه از من دو من از مثال دعوتگر باید سرجانه مقابل نته مثال سر کی ب... بیره سر خود بگه مثلا در یک عادثت دو کور شد ما تو خوشم کور است و من این نمی بینم بالاخره من ایران میمونم که خدایا چطور کنم وقتی که میرم دو وظیفه وظیفه میگم که این یه خطا است چیه؟ خطا چی اسمش خطا که منافقت است ما تو چی کردن تو کجا کار کردن نمیتونی میرم وظیفه از وظیفه میگشیم خاطر میگم چی میگی پدرم میگه والا من خواس دختره قلا به خاطر ازی دادام که دو تا دو تا چشمکای زیبا داشتی اول چشمکایت نیست دیگه خدا دنیا تاریخ شد کل چی شد رو خدایا چطور کنم یک نفر میبر من یک خایرت رو تیه که که دلار پیدا کو باز در اروپا دو دانه چشم ساختگی برد یک چشم ساختگی جور میشه من پرشیا که دلاره دلار کو بده میسم داشت که این تو نابینام از تو خودم پشتا پیدا کن از عملیات برای نه و کس پشتا نمید. بالاخره من عیسی خدا یعنی تو کنم یا دوستن پیدا میشه مگر بهم اتوبیسوال دوست خوب بودیم در در سا میشه با هم بودیم با هم میشتم میشیشتم رفیق بودیم یعنی می عملیات میکنیم در یک دکتر است در 4 5000 یا یک 10000 تا عملیات میکنیم یک چشمه خودم برای تو میتون از بیمه یک چشمه میگردیم یک چشمه برام داد دیگه سال در ده چشمه چقدر خوش با یک چشمه این چشمه اوریجینال ای چشم نیست نه نی چشمه از دیگر جایش از خود طرح بود چشمه گفت دیگه مقصد سلام علیکم دیگر فاست ما وارسی هم میشه و ده وظیفا مینیم ده کل چیز آره این نفره که برام چشمه خدا داده. برای برام بگوید که ما چشمه کرده برام دادم نهیم نمیم خیلی ای که خدای عزواجان بر ما تو دو چشم نازنین اصلی اوریجینل کاپیام نه ساختگیام نه هم نهی ای گردن ای جگر ای اعضای بدن ای تمام وجود زیبا را داده آیا حقش نیست که روز پنج مرتبه سه سی, سی دقیقه چار شده خدم قابلش سا شده بایم شکر از ترس نیه از محبت بایم خداش. یاد کردم محطم... بخورم درکات نماز فردا صبح با خاطر چی میخوارم خدای از چشم من تشکر، تشکر خدای از این گردی خوبش، تشکر خدای از این میدی که یک گوری فلاوامی خدا میت خبر نیست، تشکر خدای از این دستهایی که سعی تمام روز کار میکنم اچ احساس درد نمیکنم تشکر خدای از این مغزه که کل دنیا را تشکر، تشکر، شکر، شکر، شکر، شکر در درکات نماز از از این وقتی که بیای اسلوب برداواتش کنی بازم میگه آه ولی نرم شد نه. غافل بود از غفلت بیدار شد اما ای که مثلا یک نفر از این خاطر میگه که شما وقتی که دعوت می کنید یک اگر در سه ماه نیستی که یک به نماز نمازخان بسازی تو کامیه بستی در سه ماه اگر یک به نماز نمازخان بسازی در شش ماه اگر یک به ایمان با ایمان بسازی در شش ما اگر یک سود خوره قع بده که سود نخوره. در در ش اگر یک اوندو پرسته، قناادبیده که نام بچه خود که گات هم نماه نامشه محمدباره. در ش در سکر کن. با اگر او، از اقل شش ماه بعد ایره بکنه باز بعد از او خب ازی خاطر دعوت دعوت باید دومدار باشه اما کسایی که مدت دعوت در نظر نمیگیرن دمی یک روز ولسای من برای پلانی 20 دفعه گفتم نماز بخوان بخوان بخوان نشد دلم سیاه شد دیگه نمیگم شد تو خود دعوتگر نشدی تو خود در زمین آه میکنه؟ اول دخون چی میکنن اول زمین نرم میکنن باز که زمین نرم کرد باز باز, باز از اون کوریه کنه که ترم میسازن باز باز دو بین از دانه ها میفرسن باز سر از او دانه ها را پات میکنن باز سیل میکنن خیشا اون یک داره اونجا یک دانه بوته خراب بر اون یک سوال خراب پیدا کردن سوالش جواب میدن باز باز که بوته کار بوته که کشید باز میگن الان زمین اگه که زیفت یک داره کود یک دو سر کود براش میخردن فیزن تو بر شاک چند تا سیلی میدی چند تا کاست براش میدی یگان کتابک یگانه از برش که تبیه یک تا خوازه ادم ما امروز میایم نماز چه من تبیه امروز چه ما بریم یک ساده می درس میشینیم تبیه برکت پلانی چه ان و آیسا, آیسا, آیسا برش کود بته کود کی کیمیاوی باز هر روز اب دادا میری میری میری میری میری چا سه مابات باز باز از گندم چیز کرده باز باز از درو میکنی باز باز گورو داسیام میبری باز باز, باز یک میگیری باز باز دیقانه ای که این اصلا من امثال نیستم که اگر درمتگر این تو دقیقان واره باشن باز میتونن که در ششت ماه بعد یک سال بعد 20 نفر به نماز نماز خان بسازن اما او کس که میگه نیست من همون یک زمین تو خوب سخت بود برای زمین سب همیسته برجی, برجی گندم من چی شد؟ گنده ما رو کلونش هم مرقا بردن خلاص مرقای چیست؟ بچه های فلم تو گندم ما تو بچه فلم وقت گنده مای تو کلونش خود تو دعوت میکنی به طرف حقو دعوت میکنی به طرف چی باطل, باطل. اینا رو دعوت باتل باطل میکنن با فکر و باوش با تو دعوت میکنی به تخ... تقسیم افکاره بی پلان از او خاطر دعوت از او موثر است و دعوتی تو غیری موثر است حال شخصیت خود دعوتگر انسان در شخصیت خود متوجه باشه اول از سخنهای خود شروع کنه دعوتگر در شخصیت دعوتگر آیا مگذب زدن یاد دارم یا یاد ندارم مگذب زدن یاد دارم یا یاد ندارم شرط نیست که دکت زنان تو باید بعض دوتگره هست بسیار لغت میپرانند امید جانم مقابل میگه ولی از لغت پرانیش خوشمون آمد گمش کرده میتیز بعض دوتگره هست که بیلتی تو کردگی گپ میزنن که جانم مقابل فقط اون نه سخن آمیانه میگی کم کم با فساحت میگی لاکن سخنت باید معدبانه باشه. برادر عزیز برادر محترم دوست عزیزم پدر جان بیادر جان شاگز جان رفیق جان خیر است کلمه جان جان جان جان دوست جان میاخیل صاحب جان ای تو بگو تا کجانم مقابل وقتی گفایت هم میشنم؟ خوشحال شو، قیام و جان همی قسم گفته برو تا که مردم آیست آیست از, از, از, از گفایت شده لباس دعوتگر بعض دعوتگران را سر کنی که دست دستر چیز باها میشن یک دفع زیر بقال خدا میخورم یکی قسم خدا میخورم یک دفع چیز میکنم سر پیران را سر کنی کیجه یک داره لنده کده کلی خود چخ بسته کده یک قسم و یک چشم و یک قسم گرفته سرش سر کنیم میگه این نه این نه این نه این چیز امو اولاکو از یک خل لباس منظم مسلمانی درست پاک. ناخنوایش سعی کردی سعی کنند تا ناخنوای جاراس دیشه خوب سفید مانده سعی بسری وقت استسل کنی که از از از از از چیک رنگشوده این بحث های خاصی نکردم خداوند اینا الله حب التوابینه وحیب المتطهیرین انسان باید تاک باشه بوینه تن عراق نتان دعان خودم حتی در مزید وقتی که انسان داخل میشن پیغمه سننه اگه سیر خورده باشه، اگه پیاز خورده باشی در جماعت نرو براول خوب دعان تبول شوی یقانه که می‌بینی که می میپوشه بود میپوشه تا سجدہ نکنی زیر پاش قرمبو هست قرمبو خدا پاک حالا من سبحان الله بگم من دنیای من ممکن بده چه عزیز زیاد عصر با خدا هم تو نیست برادر وقتی که تو در مسجد میای در باز خصوصم عزیز خاطر باید انسان داوطلب نواسمون زن داشته باشه عصر بسیار خوب استعمال بکنه کارهای کالای بسیار خودم منظم بسازن تا کوچاره مقابل که سونه چهله‌ای از سونه لباس از این سونه از مهم نیست که باید بسیار لوکس باشه غ... غریبانه باشه ولی ولی پاک باشه ولی منظم باشه ولی درست باشه خصوصا کسی که دعوت میکنه حداقل متواجی از خود باید باشه معلوماتی که داره عمرادر گل ما را کسی که پرسان میکنن امروز ما گفتم شما شاگرد هستین یا استاد ما گفتم سایه ما شاگرد هستیم روز استاد است. ساو پیش یگاله میشینیم پیش سیدی عزیزه پیش نو سیدی ازو اله ما بشنو کس ازی اله ما گوش کو کتاب ازی اله ما بخو بیانی ازی اله ما بشنو از ازو گوش میگیریم میگیریم میگیریم قلمو کتابچه پیش ما سیاداشت میگریم باز دا باز ازو ازی مجلس رفتیم تو مجلس دیگه باز خود ما چی میکنیم استادی میکنیم اینا کرد عروس اگر کس گفت میسه ما میفهمم ما معلومات زیاد دارم مراسیدم ما مطالعم تکمیل شده کسی گفت ما میفهمم و بفهم کو جاهل است عالم هیچ وقت نمیگه که من میفهمم عالم هیچ وقت نمیگه که من میفهمم به خاطر ازی که و فوق کل ذی علم علی ولو که علم انسان هرقدر زیاد شهن حضرت ابن سینای بلخی میگف گفت من فکر میکردم مقابل ما داتا دروازه است یک تا دروازه است یعنی می دروازه رو بخیر باز کنم دیگه خلاصه سالم شدیم لکه دروازه رو باز کنم دیدیم در داخل ده دروازه دیگه بسته است واسه گرفتیم یک دروازه زیرو باز کردیم که ده دروازه دیگه باز او با خدا من هیچ نمیفهمم حالا ما یک روز که حدیثو شروع میکنیم از پیش ما فقط میمانه فقط که شروع میکنیم تفسیر میمانه تفسیر شروع میکنیم دیگه علم میمانه دیگه علم نیفهمم. نیفهمم که با خدا من چقدر جاهل هستم 20 سال پیش ما مدرسه شده که نه بودم مدرسه نه فرخه بودم نه دیگه استاد شدیم در دیگه می میرم ایشاار ما من بزرگ مستم دیگه, دیگه چی هستم سره هیچ کسی هم رای اینام امروز من میفهم که از مکره جاهلتر کسی را چیز نگوین شاید افغانستانم نباش امیال من میفهم که من چقدر جاهل استم جاهل استم آله میفهم باز میخوام میخوام میخوام باز, باز داکتار بخواهم داکتار دیگر دا دا دا میفهم که باز در درجه جهل ما فهمیدم که زیادتر شدن حتی خاطر انسان دوات کرد همیشه مطالعه میکنه همیشه استفاده میکنه و کسی که از خود راضی شده رو شیطان میگه راضی شو از خود عالم شود روزی که شیطان برای شادنامه عالمی رد داد که گفتیم من عالم هستم با که عالم شیطان هستی عالم اسلامی نهایت نداره علم اسلامی نهایت نداره از خاطر قاطر که قرآن تفسیر میگیره میگه ایداز از ای ای الله اعلم و بمرادیه چرا میگه الله هم؟ بیگه من جاهل است هر دفعه که قرآن رو کنی، تفسیر میکنی، و مفسری که 14 علم یادم داره، وقتی میگه الف لام میم، چرا میگه الف لام میم؟ میگه الف لام میم، مولای صاحب چی معنا؟ میگه صاحب الله و بمرادی من هم ما نمیفهمم. نه گفت جاهل هستم. وقتی که جاهل شد باز قرآن رو تفسیر کرد و اگه گفت نیست من میفهمم که الف میمانه، ص لام مانا و می میمانه. باز کل معنای ترجمه قرآن تا آخر غلط ترجمه میکنه. از این خاطر ماروز و روز کوشش کنیم که معلومات اسلامی درست داشته باشیم. آن که از ذهن خود معلومات پیدا کنیم میخوانم نه ببینیم که علما چی میگن، ببینیم که قرآن چی میگه، ببینیم تفسیر چی میگه، ببینیم سنت پیغمبر چی میگه. بسیاری از خود راضی بودن، بزرگترین چیل تیم پیشار برتان گفتم که سیتی گنده میش از داخل. اخلاص بهترین وسیله دعوتگر است. خدایا، ما دعوت نمیکنم، نه به خاطر اینکه ای پلهی ای نفر برام یک لاساو بده. چرا یکی, یکی از علماء میگه میگه که اگر ما از پیسی رقص نفقه بکنم خوب است نسبت به یکی از پیسی دعوت که ما دعوت وسیله رزق بسازم امامت وسیله رزق بسازم قرآن وسیله رزق بسازم نه ما این دعوت که خدا اللہ فلله میکنم خاطر رضای تو می کنم اگر این اخلاص انسان داشته باشه گپش حتماً در جانب مقابل خدا کنم که جانم مقابل میلیونر باشه میلیونر، پیش انسان دعوتگر حقیقی مثل وارست؟ مثل یک انسان است که یک شانزاه پولی نداره میلیونر. عادی خاطر دعوتگر سونو جیب کس سونو قواری کس سونو لباس کس سائل نمی کنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی یک صحابی مبارک روان کرد پیشه. صحابی مبارک روان کرد پیش کسرا این که آمدی کساسه به یک دانه قالین داره پینصد در پینصد است یک دانه چوکی داره تلایی بنامی ایمان خودم یک دانه چوکی مانده تلایی وقتی که ای صحابی پیغمبر میهه دهگه بیز دختری طرف از بیز دوختردگامی طرف دستاشون پکه هستن برای کهسا که ساده انگشتاریا را مونده انگشتری الماس انگشتری زمرد کلکاش پر است دیگه این مردمایی که دنیا پرست است این که نه دیگه کهسا را میکنن اوه چی طلای چی الماس چی فلانی چی فلانی خود حقیق فکر میکنن نماینده رسول خدا صلی الله علیه و سلام که رفیقش صحابی مبارک اقامت نسی انگشتش شای کرد و نسی طلای سیر کرد و مالش شای کرد چرا که چیزا کلش سرکست چرک که دنیا اطلاعاتی که امروز اکلکای عزیز یالموتای که در دلش از حلال پیدا نکرده باشه این روز در روز بر آتش می‌گرده در روز قیامت پیسش در آتش جایش ده گوری در پشتش میآیه خدا مرا تو پیزی که باز در روز کرامت در پشتم بار باشه مال که در پشتم بار باشه اسا همین وقتی که من مے مے قالین مگه از چیز مگه قالین سایبی قالین چی دسه ابریشمی ایره قاط میکنه اون طرف مگه وسوکریدم ما سر ابریشم نمیشیم چاوکی از چیز مے طلای یوتو کی چاوکی رو ما سرش نمیشینم قرار چاردالو سر خاک میشینن ا کساکی رو سلم میکنن دیگه چی میخای مے گسه ما اومدیم کہ اینا می مردومی کہ ترا میکنن و بر تو تحظیم میکنن ما آمدیم که اینوی بنده های خدا را از عبادت تو بکشیم و عبادت خدای عزواجل اینا را متوجه بسازیم ایسای ورقه میگره پارب پارامه کنم چیز میگرم مگرم برو پسان بر لختکی میبراید بر نفرهای خود میگن میگه اینی قسم مردم ما را شکست میدن این کسی که تلا در نظرش نامد عبریشم در نظرش نامد الماز در نظرش نامد این دخترها رسولش سال نکرد آمد قرار تو هدف خودا بیان کرد این قسم انسان هدف من میتونه که ما را شکست بدم اعتراف میکنم از این خاطر دعوتگر باید اخلاص داشته باشه. دیگه هست؟ دعوته که بدعا باشد تاثیر نداره وقتی که یک نفر دو دو دعوت میکنه که بیا نماز بخوان، باید در پنج وقت نمازت بر خداوند دعا کنی بگو خدایا خدایا اول مرا هدایت کن خدایا مرا اول ببخش خدایا مرا وسیله هدایت ازی بگردن خدایا ای جوان توفیق بده که نماز بخونه با بسیار اخلاص برش دعا کن از این خاطر بسیاری, خز... بسیاری وقت دعوتگرای حقیقی هستند یک نفرش میره که تو جانم مقابل گپ میزنه دو نفر دیگه جوکن دعا میکنن اگر تو برو کتازون نفر او دعوت که به اسلام ماده نفرشی شم دعا میکنیم برش خدایارو خدایارو پروردگارو رحمت تا نازل کن پروردگارو دگر پایدی تاسیل پر تو پروردگاره، دل ازیره چیز کن خدا؟ اینه اگر بدون دعوت دعا کنی یا بدون دعا دعوت بکنی دعوت تاسیل نمیکنه انسان دعوتگر باید بفرمه که انما انت منظر واز این موضوع تویی است که باید ایجان ایجان مقابل از اذاب خداوند از نتایج گناهایش ایرا با خبر بسازیم نه ای که با نا ایم باشیم برای زود باید که تو تو که تو تو که تو اتکو صبر داشته باشیم دعوتگری که صبر نداشته باشه صبر نداشته باشه این دعوتگذر شدنه نمی‌تونه. بی‌صری کساس نیم سال گذشته شیش پایش طاییش درد نگیره و مانده میشه و چه وقت گپ خلاص شوه و چه وقت از این مجلس بریم و برایم اا بیکار من با سای دموبایلک خود گیم میدنه. این طرف نمی گوشش طرف ماست نمی گوششان ده تلفونش مصروف است. این دعوتگذر شدنه نمی‌تونه. یا خووش میبره قرار شیش چاک واسه که یارو ساعتی دو سه نفر دعوت میگیم، دعوتگر خود ما عمر زکه رو خراب کرد. چه قسم خراب کرد؟ کی عمر زکه؟ اینجا یک دفعه ما صندوق رو تو دعوت تو توخو خفته میکدی شو؟ ما به دور دینم میگیم عمر زکه فکرش رفت طرف فاسیون از سال دیگه خراب قرار تو بود. دعوتگر اصلا میاد باشه باشه. صبر میاد باشه باشه. شاید دعوتگر مثل پیغمبر سان کلیت خور فقط ما توی که تا خبر دین انس ما کار پیغمبر رو میکنیم چی کار پیغمبر را میکنید پیغمبر صلی الله علیه و در صاحب رفت عین علی مبارکش از خون پر شد تمام روز اینو اما اگه یک نفر یک انتقاد سر کرد یک دفعه انفجار میکنید دوست دعوتگر نشدیم خدا کنه دوست دعوتگری که از انتقاد خفه شد و یا از اینکه یک نفر توصیتش کرد خوشحال شد او دعوتگر نیست دعوا kia ناس توصیف کس خوشحال شون میگه تشکر سایه من خودت تو کلا بسیار زیاد میفهمم یکمره توصیف نکن اگر کس طرف اگ داد انتقاد کرد که والله استادی گپای تو خوبش نبود والله جملاتت خوبش نبود والله درسات کو نبود بود والله گپای تاریخش چیر شده این خیر است خانه تابات قیام جان گپای ما تاریخش چیر شده خدا تاریخ خودت رو خوب کنه اما باید خفنشی چرا اگر خفش شدی با تو دعوت گیر شده را میتونی دعوت بیار باید چی داشته باشه که حتی کس کتر سنگ ها بزنش کتر سنگ بزنش, کت بزنش دعای بد با برش نکنه باید خدای هدایتشان کنه مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم. الموضوع که امروز مسلمان هستیم و با با تیداد مسلمانا را میشنایم از چی ما تو مسلمانیم از اونم صبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود که ما تو مسلمان شدیم از صبر صحابه کرام بود که داشتور از گشنگی و تشنگی و حالت خراب تیر کردن تا که برای ما تو اسلام رساندن خون خود را ریختند ما تو را برای ما تو اسلام رساندن از صبر از این ما تو مسلمان هستیم اگر اونا صبر نمیداشت دلیم را کامده بود مانده شده بود پس هیچ میشد نقطه‌ی دیگی که برای دعوتگر مهم است، وسایل دعوت است. هر عصری وسایل خود داره دارد. دعوتگر حقیقی کیست؟ که از وسایلی که در زمان سابق هم استفاده کرده و از وسایلی که امروز به درد می‌خورد. از وسایلی که هم استفاده کرده بود، هم در سوق اکاز می‌رفت. میرف در مارکت، اونجا مردم را دعوت می‌کرد به اسلام. موضوع هم باید در مارکت‌ها بری مردم به اسلام دعوت بکره. پیغمبر سلام می رفت در قریه ها 99 مرتبه خانه ابو جهل رفت ابو جهل دیگه بر جو گفت دیگه پیغمبر دیگه روز خانه ما نبیه یک آمدی من ترا دا جازه رمیتم ساعت نونیم بجاز که دروازه تختخت می میشه خانمش می گه تو برو که چی گفت اگر میمان باشه در شب ناوقت در این شمالک و در این گردباد چی است ؟ وقتی که می رکت در پشت و محمد صلی علیه و ابو جهل بیا بگو که لا اله الا الله. رو برش که نگفته بودم که دیگه نبیه در خانی تو گفته, گفته بود که در روز نبیه مخ شب آمدن دعوتگر باید در های مردم بره او مردم به دین دعوت بکنن وقت باز ما تو مطابق سیرت پیغمبر دعوت میکنیم در خانج دعوت شوه در مجلس دعوت شوه در جایی که امکاناتش بود دعوت شوه از طریق سی دعوت شوه از طریق کسر دعوت شوه از طریق تلویزیون دعوت شوه از طریق اینترنت دعوت شوه از طریق زبان های مختلف دعوت شوه از طریق کتاب دعوت شوه از هر وسایل مختلف باید انسان دعوت گان استفاده بکنن تا که دعوت از این موثر باشه اما اگر ما از وسایل عصر خود برای دعوت اسلامی استفاده نکنیم ما تو ناکام هستیم. حتی از فیلم باور ب کنیم ما وقتی درتییا از دوب رفتیم تا تریپولی ش تا دوبع تییه بودیم. دو فیلم در تییرا بر ما ماندن تایرا بود از مسلمان ها پرستان شار کردیم گفتیم چرا همین فیلم مسیج و انگلیسی مانده بود. گفتیم فیلم چرا شما مامانین گفت هر دفعه که ما تاییر خود میبریم این عی فیلم گفت که غیر مسلمان های میده در هر نفر پ نفر مسلمان میشه. ویندا تایرا قله گیدای فلم تا فیل بکاندو فلم فیلم رسالته او که میبینه که پیغمبران چه قسم از میشه جنگا چطور است روان چطور است کافر از غفلت چه میشن میگه سفرش که خلاص میگه کجاست مرکز اسلامی که ما کلمه بخونم از طریق فلم ما چندین نفر مسلمان ساختید من باید از وسایل روز دعوتگر بر دعوت خود استفاده بکنه. در غیر او دعوت درست نمیشه مراحل دعوت باید در نظر داشته باشیم که یه اولش از ابتدای شروع میشه کسی که نه از برای ز غفای نه اون غفای جالب بعد از دوره متوسطه شروع میشه دوره لیسه میشه اینال لی دعوتگر بالاخره مرحله لیسانس میرسن بسیاری که وقتی که خودش رسید خودش رسید دیگه خلاص دیگه دعوت خلاص ما دیگه رسیدم یی درسی که ابتدایی نه برادر تو سری که رسیدی تو عالم شدی تو 5 سال پیش خودت فکر کن این حالا 5 سال پیش دو مثل امروز بسیاری کسای دیگر از این خاطر باید دعوت هم تو دوام بکنن از طفل دو ساله و سه ساله باید دعوت شروع شود تا ریش سفیل ساله از مهندس، انجینیر، دکتر و, و پروفسور برای کلش باید دعوت با اسالیب مختلف داده شود با مراحل مختلف تا که دعوت جوابگوی سخنای کلگی باشه. و باز بعد با که ما اینی چیزا را داشتیم مراحل دعوت خود اصلا کردیم دعوت فردی کردیم باز اون وقت ما آماده میشیم برای دعوت اجتماعی که باز درباره دعوت اجتماعی انشاءالله در درسای بعدی اگر فرصت داشتیم باز میشه که در صحبت بکنیم سبحان رب بکره بلعزتی هم سیفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین بر وعدگارا نشست ماره پیغمبرت بر ما داده که اگر یک تعداد از مردم در خانه ای از خانه خدا جمع میشن اطراف از اینا را ملائکه ها میگیرن و بالای از اینا رحمت خدای از زوازیل نازل میشه، پروردگار ما، پر در این مجلس ما رحمت نازل کو، خدای نشست ما را اینجا مخلصا به خاطر رضای خود بگردن و خدای ما را توفیق بده که ما در رای حق در راه مستقیم در راهی که رضایت خودت و رسولت است ما او او در حرکت شدیم خدای اول خود ما را هدایت بکن و خدای ما را وسیله هدایت دیگر را خدای هر حرفی را که ما میزنیم و هر حرفی را که دوستای ما شنیدن و هر حرفی را که استادها درس می‌کنند و از هر حرفی که ما استفاده کردیم خدای هر حرف زیره در جمله اعمال نیکی ما در ترازوی اعمال ما بگردن پروردگارا آخرین جمله‌ای که از زبان ما خارج میشن خدای در وادی دیدن عزت جبرائیل علیه السلام آخرین کلمه‌ای که از زبان ما خارج میشن آخرین جمله‌ای را که استعمال میکنیم خدای ما را توفیق بده کی آخرین جمله ما لا اله الا الله محمد رسول الله صلّى الله